حَتْ دیدار <عزمان> آخر شاید رسید از راه فردا ی روز بهتر علا چبو داره چه چون بلدی بخندی و چشم دل بباز و واه چه دل ببندی عشقم که دل سبز توی دنیا از موج شادی فردا توی دنیا از موج شادی تا فردا سلام به همگی حال احوالتون چطوره یک هفته یه دیگه و یک رادیو پس دیگه آغاز شد با شما ایم.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 با تشکر از شاعرمون این هفته دیگه تریپ هنری برداشتیم متوجه به اینکه خودمون از هر بیست انگشت دست و پامون فقط یه هنر میچه که یک سری میزنیم به دنیای هنر و هنرمندها این هفته تو ببینیم اونجا چی میگذره به کی میشه گیرای ریز و نامحسوس پسوردایی داد به کی میشه گیرای جف با تو صورتی گل گلدروش مخصوص به رادیو پسورد داد پس هر چی هنر دارید این هفته بردارید بیارید بریزید وسط تا دیر نشه که فقط هر شب از ساعت 9 ده وقت داریده برو بریم آقا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 رکود کشور و خوابیدن تولید اینجوری گفتن شما وقتی میخواید تولید کنید یه دستگاه فاسدی هم که حالا نمیخواهم نام ببرم و بگم چگونه میتونه کالا رو قاچاق وارد بکنه خب نمیذاره شما رشد کنید باید جلو این فساد گرفته بشه باید سیستم گمرکی ما شرایطش بهتر بشه بله بند خدا احمدی نژاد هم از برادران قاچاقچی یا یادتون باشی زیاد یاد میکرد منطقه اونم خب محقوظ به حیا بود و هیچ وقت مستقیم اسم نمی برد دیگه شیخ حسن هم اتمالا منظورش از دستگاه فاسدی که قاچاقی کالا وارد میکنه دیگه همون برادران قاچاخچی ها به صلاح معدبانه ترش سپاهه با اینکه از نهاد با این که این نهاد نورچشمی و مستقیم زیر نظر رهبر ایرانه اون وقت رئیس جمهور ازش به عنوان یک نهاد فاسد و قاچاقچی یاد میکنه. یعنی من جای رهبر بودم بمبرمیخور. یعنی که چی آقه؟ اون از هاشمی که صلایت شورای نگهبان که نصفشون رهبر خودش انتخاب میکنه زیر سوال برد. این روحانی که به نهاد عزیز دردونه رهبر میگه فاسد و قاچاقچی و این عطباق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 سلام فرشیده منافی خوشید سلام جاتون خالی مو الان لب ساحل لب آب تو مالدی 10 3 درجه زیرا آفتاب دقیقا مثل فکر کنم پرانک باشه آره مثل پرانک کوکل بغل یادم رفت ولی اینا کوکتل نداره گفتی آره. هوا آفتابی فکر کنم خیلی نامربیه اینجا هوا ها پرانک اینجوری کوفتت میشه <تصفيق> علی و مینا هم مالدی مینا اون هوا بب بب. خیلی ممنونم خیلی متشکرم خیلی لطکه ببینید چطور با روح و روان آدم بازی میکنین شما آقا آدم از مالدیف لب دریا زمین می‌زنه پراگ گزارش هواشناسی می‌ده آقا فکر نمی‌کنین این آه من این آه من سونامی بشه کل مالدیو و با خودش همه رو ببره زیرا آب خیلی ممنونم به حال از تماستون اما نه تنها مالدیو که از امروز تا آخر هفته تقریبا همه مناطق ایران یک هوای صاف آفتابی دارن ینی که دیگه هرچی میخواین بریم خیالتون راحت باشه برف و بارونی نداریم این هفته. راستی تا یادم نرفته. کرمونیه و یزیای عزیز، چه دیروز برف اومده بود اونورا، چشمتون روشن، و خوش گذشت. آخه تو یزید و کرمان بارش برف واقعا اتفاق نادریه. هر چند سال یه بار شاد اتفاق بیفته. دیگه الان هم تا الان هم دیگه فکر کنم همه برف‌ها آب شده باشه. همین دیگه خواستیم فقط یه تبریکی بگیم. ان زندگیتون به سفیدی و پاکی برف باشه. سلام من شهرامم از مونترال کانادا زنی میزنم الان ساعت هفت شد پنشنده 11 فیبریوی اسمت رو میگم الان منهای شونزده درجت بحبه فیلز لایک like منهای سی و دو بحبه ببینم کی میتونه کل اندازه قربانه اد خدا دارم ممنونم از از شهرام به ما دلگرمی میدی واقعا پرچم بالاست مونترال منفی 16 فیلز لایک like منفی سی و دو. نبود؟ این لخت و پتیار رو ولشون کنیم که از مالدیو زنگ میزنن میگن حواسی درجه است. اینا طرفدار شاهن زنگ بزنین بگین چند درجه زیر سفرین. اینو بگین آورین. آوریین. اوید. Oh, yes. oh, yes. دوستان شنوندگان خانمها، ها آقایون دختر خانمها، ها آق پسرها همونطور که اول برنامه هم گفتیم این هفته میخوایم یک سرکی به دنیای هنر بکشیم موضوع این هفته هم هنر و هنرمنده و میخوایم بریم ببینیم که این هنرمندا فازشون چیه و زندگی ها و دقدقه ها و مسائلشون چیه از اونجا که هنرمندا کلا خیلی حساسن ناچریم حچی باورچین باورچین این هفته برنامه رو کنیم مبادا که ترک دارد چینی نازک و این حرفا پس یه سلام خیلی نرم و نازک در همین ابتدای برنامه ارز میکنی خدمت همین هنرمندانی که هنرشون و قرار دادن برای رسیدن به دنیایی بهتر و زیباتر و یک سلام آهسته تر هم عرض می کنیم خدمت اون عزیزانی که هنر رو فقط به خاطر دل خودشون دنبال می کنن و اساساً کاری به بهتر و بدتر شدن دنیا ندارن تو رو خدا راحت باشین به کارتون برسید ما نمیشیم ما این دل ما همچه غار غور داره میکنه گوش نمونه بریم سراغ استیک stay hey. اولین استیک این هفته رو آغاز میکنیم. ما اینو میته مثل همیشه گاز استیک رو گاز خونتون بدونین گاز خودتون بدونین ما رو از غذای خوبتون بی بهره نذارید به سرعت میریم سراغ شرکت کننده های استیک امشب اولین شرکت کننده از ناف تهران آقا سامی لیکو آقا جون از غذای اصل ترون اصل ترون قیم سبزی اشتبا نکنین قرمه سبزی نه آقا جون قیمه سبزی که مختص همه بچهای ترونه عزت زیاد از قریه کت بچه در خونگاه مهبه قرونه آقا. آقا از کت بریم سراغ پروڈیوسر های و همون شفایی برنامه شهرام ککام در نظر داشته باش همه قضاها جنوبی هم و شهره دیگه اونا رو از جنوبی ها یاد گرفتن ما خیلی دوست نداشتم قضای شما نه بله دوست نداشتن مرسا دادا چی صفایی وجوده من خواه که پای بچه های تیرون هم بله ممنونم از نظرات پروڈیوسر های ما بریم سراغ شرکت کننده بعدی محسنم به بانکور گنگ میزنم قضان ملید. علی خورمو هم. کشکینا که کشکینا هم به این شکل میکن گرمه آرک میکن و دو و ماس خاتیش میکن دو روز میلنش به خوکزدار بود بعد که خوکزدار بی یا میدنش گاز یا میدنش برای افتو که جنب و ریک و موه کشکینا هم با پیاز و بعضی هم عدستی یا نخود حتی بعضی هم مونن میفردنش مونن کشکینه شف جلال والا من با توجه بی که کار کردم با سطاهای جدید رو دوست دارم وقا محصر رو تو گروه خودم میتونم قبول کنم بسیار خوب منم فکر میکنم که این همه هجوم حضور نخود به نظرم میتونه نفاخ باشه <تصفيق> بنابراین من نمیتونم با ایشون کار کنم <تصفيق> بسیار خوب برو سامق شرکت کن <تصفيق> جون سلام اوندوارم چه حالت خوب باشه آذربایجان ما یه آش داره بهش میگن دوغا دوغا یعنی همون آش دوغ ماست آب پرنده تخم مرغ میذارن روش بعد که تخم مرغ با سبزی ممزی همه جور سبزی ها داره بلی یه دونه سبزی داره اسمش ترشنگه ترشنگا رو که ریختن نخود زیاد و با بنج همینجوری میذارن یه سه چهار ساعتی میپزه بعد میخوری با نول لواش با نول لواش که بخور این نذلی عذرت داره ممنونم از شما شف سعید سانه یا شیش ایله تعریف لده ناجال دخ والله نه نه به بخش ترجمه کنی ترجمهش هم ببودی یعنی جوری به و تاب <تص> گفتی که گوش نمون شاش آفرین آفری جلال راستش من طرفدار دارم لباشم و هر چیزی رو با لباش کنست دارم فقط یک مرغ روی آش من خیلی نگرفتم منم والله نفهمیدم میدنم پخم و آش چه شکلی میشه شکل کننده یه بعدی استیک هی گو هوايي اميت. How is going buddy? Oh. accent هاست. پرشید من با یکی از ماستر شيفاي استرالیا کار مي كنم و تقریبا با هر چیزی غذا درست کردم ممکن میتونم بگم خوشمزه ترین گوشتی که پختم بوده. باید به صورت ریل یا میدیوم ریل حتما پخته بشه اگه بیشتر پخته بشه اصلا خوشمزه نیست واقعا خوشمزه است توصیه میکنم ترایش بکنیم نیما هستم از استرالیا حتما کرکدال رو می میکنیم شف شهرام ککا ما تمسا سید کرده بودم اما نپخته بودم تا حالا حالا فرده میرم یه دونشه بگیرم ببینم چه مزه میده والا با توجه به اینکه کروکودایل معمولا همه رو میخوره من فکر کنم حجوم حضور کروکودایل توی غذا حسه خوبی داشته همکار عزیز ببخشید حجوم حضور مال بنده بود جسارتا من آزم میخوام مثلا جمعه اینکه شما ناراحت شد یگه میخوای آشه یک چیزی درست بکنم با که اگه اجازه بدید بچه پروتیسورای عزیز وقت نداریم ایشالله توی استیک اکسرا ادامه میدیم این بحث رو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 شربی. آقا من میخواستم میگم که خب ما حالا تهران به دنیا اومدیم مجبوریم تن قضایی که بگیم چهلو کباب دیگه من از احواز تماس میگیرم زنگ نزدم از قضایی اینجا تعریف کنم زنگ زدم و آتر رو خدا نمره منفی بدید آقا ما یه قضایی داریم تو محلمون به اسم آبگوشت بامیه آقا اسمش هم حالتو به هم میزنه خیلی بده خدا و کیلی. قضای امروزی که میخوام به تو معرفی کنم مای سهوره یکی از پرترفته داریم قضای جنوبه یه غذا بود دسر بود میان وعده بود خونه یکی خوردم اسمشم بال بود چنگمال بله تشکر میکنیم از همه شما و باز هم یاداوری میکنیم که گاز استیک بدون شما خاموش میشه و از شما تا درخشیدن در استیک فقط یک گاز فاصل است تا فردا شب توسونه <متصفح> تو پنج دری تمش می سرمون با این که در بیری که دلمه دلمه دلمه دل انتظار دلمو با دل پتاشت تو دلمه بریم سراغ رادیو پاسوردهای امروز رادیو پاسوردهای 982 امروز شنبه 24 و بهمن 1394 میریم سراغ رسالت هنری هنر برای همه چیز و هیچ چیز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 پس در وادی هنر هر کار اشقتان کشید بکنید که آخر سر به هر حال مورد قضاوت و انتقاد و حمله قرار گیرندگانید. نید ام جمعی از هنرمنداب و خودشونم نمیدونن دنبال چی تو هنر بوده ها و تالام هنر براشون نه دنیا داشته نه آخرت. آخرتهایه رادیو پس فرد دا دا دا, دا. دا. دا. دا. فرشی جان جان این قصه امروز ماست بله یه جوری ساعتشو تنظیم کن خوب. که ما رو ساعت 4 صبح از خواب بیدار نکنی بابا دو ساعت یاد داریم سر کار فدات شم ساسان هستم از ژاپن شرمنده تام ساسان جان به خدا سایلنت همكم شما هر وقت دی م... موگه مزاحم شدم اصلا بذارم رو ویبره اصلا خفهم کن چون تعارف نکنه اصلا چی کاریه ها بریم سراغ سوال این هفته این هفته اگر با ما در تماس هستید راجب موضوع برنامه اگر خواستید نظر بدید به ما بگین که این که میگن هنر نزد ایرانیان است و بس به نظرتون حرف درستیه یا نه این کی میگه هنر نزد ایرانیان است و بس حرف درستی هست یا نیست بگین خودتون چه هنرهایی دارین و از این هنرتون تا حالا چه استفاده هایی کردین البته میگم لازم نیست حتما موزیسین باشید نقاش باشید بازیگر باشید و اینها آگاه کارهای روزمره و هر جنبه ای از زندگی ما میتونه هنرمندانه باشه پس این هفته برامون از هنرنمایی های خودتون و یا اطرافیانتون بگین تا ببینیم بالاخره در عالم هنر ما ایرانی با خودمون چند, چند مجید جان سلام سلام شب شما به خیلی وقت تهران شب اول وحش ساعت 12 دارم برنامه‌می‌شمم آقا این آقا ایسا بشاگردی که گفتی مو سیخ شده بله بله من میخواستم ببینم کدوم موا فرید جون <تصفح> تو عکسای یه چیزایی دیگه معلومه فدا مدا مجید تهران عتبان اگیم به بله مجید جان من سرم مو نداره خب کلا که بیمونیستم قبونی شکلت دیگه مهار من موهای دستمو گفتم موهای همون دستم رو گفتم انقدر شما رو این مسائل ریزی نشیم خوبیت ندارد در رابطه با سوال برنامه سجاد گفته که خارجی و با ما کردن شورت میسیج سند به اس ام اس مثلا خواستم بگم ما خیلی مخیم و این حرفا. اما قهرمانان ایران زمین با ابداع خ... چانتو خیپچتا هم به جای خیلی خوبه خدایی خیلی خندیدیم خدا خیرت بده برای هزارم این بار ثابت کردن هنر نزد ایرانیان است و بس <تصفيق> والا من نمیدونستم این مخفف اینیه که گفتین خیلی خوبه خدایی خیلی خندیدیم خدا خیرت بده اون به آخر به خیرت بده چی پس مخففش باید بشه خ خ خ خ ب نخ خ خ خ خ خالیکه این مشکل کم بوده بیرم اگه بتونن تو این اصطلاح این هنرمندان ایرانی حال حلش کنن دیگه واقعا میشه گفت دیگه واقعا هنر نزد ایرانیان, ایرانیان است و بس شهاب گفته که به نظرم شاید بهتر باشه اینجوری مدعی باشیم که سرچشمه بعضی هنرها نزد ایرانیان است و بس این اینم میشه سرچشمه آره چون معمولا ما ایده اولیه شد چند صد سال یا چند هزار سال پیش مثلا میدیم به غربیا بعد همون ایده رو اونا میگیرن با ک... به کلی مثلا اختراع و اکتشاف و دستاورد میرسن بعد ما بی‌نصیب میمونیم دیگه مهم اینه که سرچشمهش مال ما بوده بعد دیگه توی فیسبوک اینا که خوندم مال فیسبوک بود امیر توی فیسبوک گفته من که فقط آشپزیم خوبه هر وقت که بتونم آشپزی میکنم ولی فقط غذای ایتالیایی بلدم از ایتالیایی منظورت همون جشوندن آب و ریختن مکارانی اینا توشه دیگه آره همین دیگه خسته نباشه هم اگر خواستید با ما در تماس باشید پاسورد و اترادیوفردا.کام ایمیل ماست در فیسبوک گوگل پلاس کلاد اینستاگرام میتونید ما رو فالو کنید برمون کامنت بذارید همینطور اپلیکیشن رادیو پاسوردا رو آی او اس میتونن دانلود بکنن روی آیفون یا آیپدشون و صداشون رو به گوش ما برسونن و یا برنامه های رادیو پاسوردا رو از اون طریق گوش کنن و همینطور رادیو فردا رو به صورت زنده میتونن بشنون به کانال تلگرامی ما میتونید جوین بشید و مطالب ما رو اونجا ببینید و همینطور میتونید عکس ها و یا فیلم ها و یا صداهاتون رو هم برای بخش استیک هم راجب موضوع برنامه به پاسورداگرام بفرستید که شماره اش هست 20420602338377 به پاسورداگرام میتونید عکس ها فیلم ها و صداهاتون رو هم برای بخش استیک و هم برای موضوع برنامه بفرستید و سعی میکنیم اونهایی که خوب باشه در اینستاگرام و کانال و تلگرامیمون بذاریم کاراتونو و در نهایت هم یک ویدیوی قراره با این فیلمها و اکسهای شما که برای اون میفرستید برای برنامه استیک ساخته بشه همینطور تلفون های پیام گیره ما دو بیست، و دو یازده، سه و که از داخل ایران تماس میگیرن دو بیست سلام به پرشید منافی نازنین روز اشاق یا والنتاین است عشق، علماس، روح انسان است هرکی از عشق، است تویی شک میکن این پلید پیوان است. شیخ نفرت پراکنه فریاد ریشه یک برکن از بنیاد شاد باش و بخند و عشق و عاشقان روزتان مبارک باشید قربانت جناب منافی بحرام هستم از دادمار برم ممنونم بحرام جان روز ولنتاین هم مبارک باشه بر همه گیه البته فرداست یعنی یک شنبه هست ولی خب دیگه ما پیشواز رفتیم دیگه ممنونم از تماس شما Can y'all dig that? Now, when arrows don't penetrate, see. Cupid grabs the pistol. Ah, yeah, now. Nah, now look ahead, he shoots straight for your heart. Now, nah, and, and he, he won't miss you. miss you. But that's all right, y'all won't believe in me anyway, but. you want اصولا تو عالم هنر دو تا طرز فکر وجود داره که هر طرز فکری هم پیروان خودش داره یه اده میگن هنرمند همین که مثلا قلم مو رو دست دستش میگیره باید یک هدف و رسالتی داشته باشه که مثلا یا تبعیض رو ریشکن کنه یا جلوی ظلم رو بگیره یا مردم رو آگاه کنه و این حرفا و هنر بیخاصیت نداریم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 که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشن کامران ملک موتی سلام الو کامران الو الو فرشی من صدای شما رو قطع برس میشنبم خب امیدوارم که صدای ما رو از این به بعد بهتر بشنبی چه خبرها این چند روزی که نبودیم کامران خوب به سلامادی پنجشنبه یه هفته گذشته با پخش و پلا شدن سیمولغای بلونین جشفاره فیلم خب به پایان رسی تقریبا بدون حاشیه کارش تموم شد و همه چیز برگشته به حالت عادی از همون پنجشنبه هم فیلم کوچه بینام به کارگردانی حاطف علی مردانی نمایش شروع شده که اگه موافق باشی بخشی از صدای فیلم رو با هم بشنبیم بشنبیم سلام اونجو ببخشو من جنه افشه شون خوش شد خربونه برم تو رو خودو بده. هلا. این ماجره کانادا کلن پیچیده بای کانانا ماجرهتشون کلن عوض شده ولی من یه بابایی پیدا کردم پونزن افری میگیره تایلند استرالیا من برگردم با اون مرتی حرف میزنم باید واسی واسه من دارن یار حنات پشت من رنگی نداره. بگو ببینم پسرکی بود. ناخون کنده شد. به درک. همین دوستات یادت دادن این چیزا رو دیگه. باز بگونی نیلو فرنازی باز فاطمه پورت کرد ها؟ واقعا خجالت داره. بخش از صدای فیلم کوچه بینام ساخته هاتهف علی مردانی رو شنیدیم. بازیگرش کیا هستن؟ کامرا تقریبا بازیگر، اما بازیگره اصلی فیلم فرهاد اصلانی امیر آقای باران کسری و پانتا بحرامن اینم اضافه کنم که فیلم خیلی ازش استقبال شده ظرف روز 90 ملیون توم هم فروش داشته هم. اما در رابطه با موزه برمان فرشی باید بگم سرمایه گذاری با سروتی که برمان از کجا آمده توسط آقازادا چند وقتیه که تو کارهای سینمایی تلویزیونی الباته بیش از سینمایی و این شبکه‌خانونگی خانگی موت شده باف شده یکی از مواردش هم همین سریال شهرزادی که هفته پیش توی یکی از صحنه‌ها عکس حسین شدیت مداری به یه مجرم تودی دیده شد باعث شد که سدهادی رضوی سرمایه‌گذار کار نامهی به شریعت مداری بنویسه و انوان کنه که خانندگی خانده همیشهگی کیهان شاگرد جا. اسکر اولادی بوده حسن فتی هم خیلی اسخایی میکنه و تو فاز حتما داستان به مدافعان حرم هم میپردازه شهر زد بچه همون و خود فتی نامه ننوشته؟ چرا فتی نامه نوشته مطابق تهیه کننده سریال یعنی سید محمد امامی نامه نوشته فتی نوشته من این چیزایی که فرمایه گذار گفته رو نگفتم اگه قرار باشه ایشون بازم از این کارا بکنه از ساخت فوازایی بعدی انصراف میده عجب از جشنواره موسیقی فتی چه خبر کام فردا پنج تو برنامه اجرا میشه از جمله کریستوف رضایی که تو تالار وحدت اجرا داره گروه 7 تو سالن میلاد همینطور گروه بوشهری آوای موج هم که کلی طرفدار داره فردا ساعت شش تو فرنگسره نیاوران به صحنه میرن بسیار خب ممنونم ازت کامران عزیز بعد می میکنیم تا فردا و یکی از کارهای همین گروه آوای موج رو به اتفاق میشنویم تا فردا خدا نگهدار با سلام و زمن ابراز خوشحالی از درخواست 13 سناتور آمریکایی در زمینه تعدیل قانون لغو محدودیت ورود بدون ویزا به آمریکا برای شهروندام دو بیستوی کسی امروز را با مروری بر اناوین مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می نمویم. استفای شهردار منطقه دوی تهران بعد از رسام شدن ماجرای کتک کردن کارگران یک کارواش توسط ماموران شهرداری و تحیر ناظران از اینکه نکنه این خبر مال سوئیسی جایی باشه اعلام می ممنوع فعالیت نبودن محمد رضا شجریان از جانب صدا و سیما و نظر کارشناسان که در انتخابات اندیکوروس هم ممنون نیستن چه رس شجریان و انتخاب دی وزیر روسیه از سیاست آلمان در قبال پناجوجیان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 سلام بناب گزارش های رسیده قیمت سکه در بازار تهران امروز و هزار تومان افزایش پیدا کرده و باز هم مرز یک میلیون تومان را در نوردید در همین رابطه یکی از کارشناسان امور مهریه کشور به خبرنگار ما گفت یکی از خطرات افزایش قیمت سکه مربوط به مساله مهریه و خجموم بعضی از خانممه برای به اجرا گذاشتن مهریشان می باشد و یفصود مثلا اگر مهریه خانمی هزار سکه باشد فقط از دیروز تا امروز ارزش مهریش 35 میلیون تومان بالاتر رفته است و همین مسئله می تواند بعضی از ها را به نقد کردن مهریشان ترغیب نماید پایان مشروع اخبار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 برداردن پلیس ب... در پایان رهبر ای... بفرمایید ولی, ولی سلام اج کنم خواهرم م... ببینید خواهرم بنده از من کلا برداری شده میخواستم ببینم شما میتونید به کمک کنید یا نه برداری شده بعدش شکایت کنی ت... نه نه نه تو اینترنت ازم کلا برداری شده توضیح برداری ای ببینید من توی اینترنت با یه خانم آشنا شدم بعد و... آخ... خب یه آشنایی با خانم داشتید آره. محرم بودن یا نامحرم؟ یعنی ما آدم با عممش تو اینترنت آشنا نمیشه که خب این آشنایی اه. با نامحرم بله اضافه کردم بله آره میگفتم بعد خیلی علاقه‌مندم شدیم به هم توی این چند روز یه علاقه هم البته رابطه اینو مشرو به حساب میاد آره میگفتم من خیلی اصرار کردم که خب ما بعد از این آشنایی مجازی هم دیگر رو بعد واقعا که ببینیم بعدش هم خب قرار گذاشتیم اه. بعد اه. تلاش برای اخبال نوامیس مردم هم داشتید. خانم من چلو کبابیه بعد چرت چه می‌ندازید شما یه ماسخیارم داشتم لا بود آقا عزیز بجلو بدید سنده کارم انجام بدم کار پلیس رو مختل نکنید اعدامه بدین بله بله با توجه به اینکه یه چیزه فردا ولنتاینه می‌خواستم براش و شو巧克力 تو بعد... از این حرفا هم بخرم بعد انجام عملی نفوذ گرایانه ولنتاینی داشتی با کشی مال تو حالا چقدر شده حسابمون ادامه بدید اه. آقا آره دیگه هیچ دیگه شب قبل از قرار یه دخانم یه شماره یه کارت بهم داد گفت دو ملیون بریز به حسابم بابام مریض شده پول لازمم. بعد برداشت پول به نامه هم هم داشتید؟ جان، برداشت پول به نامه هم جرمه. دو دیگه از یه رویی که رد بشه اه. همه چی جرمه. عزیبا. ادامه بدین شما. هیچ چیزی دیگه سه ساعت و نیم سر قرار وایسادم نیومد. بعد کجا در انتظار نوامیس مردم سه ساعت و نیم. خانم یکی دیگه ما رو کشته تازه پولم گرفته از من بعد شما می نیویسی به حساب من؟ خود کار پلیس دخالت نکنون شما. هیچ دیگه. دیگه من علی خانم شکایت دارم دیگه. آیدی زری پرکلاقی این کلش اف کلانز بود زری پرکلاقی آره این, این کلش اف کلنز کلش اف کلنز خب یه دونه رابطه اینو مشکو با آیدی مسخرم داشتی بله آه. بله جناب سرحنگ بله خودشونن حالا میگم با کارت هم میشه پرداخت کنیم حالا کی شما داری گوشی جناب سرحنگ میخوان با شما حرف بزنن حبردار بفهم جناب سرحنگ الو جناب سرحنگ دیگه چی چخ... میگم شما خجالت نمیکشین و بروی منو جلوی هم کارام بردین سرحنگ تو اونجا چیکار می‌کنی کاری دیگه من با تو کاری نداشتم این هفته که شما بیجا می‌کنی با من کاری نداریم من با شما کار دارم آقا چون جو... سران یعنی اه. من با هر جای نیروی انتظامی تماس بگیرم واسه میشه به تو آخرش؟ بله شما تحقیق کن تو رالی بنده ای الانم تازه یه جور ماجور ماهش ما اضافه شده اونم مزاحمت بر سر گرد از خرزاده سر از خرزاده دیگه کی خانم داشتی وقتشون رو بیخود این جهت پشه منم نمیدونم یا علی ایشون هم سرگود بودن بله رنگ بیخیال لا سرگود از خردادم بس خودت الکیه دیگه یعنی میگم ببین قبلت تو رستوران کار می‌کردی سرهنگ آقا عزیز زشت سرگودی مملکتو مسخره می‌کنی بدم ادبات کنم بده بابا از موقعی که من زنگ زدم هی میگه یه دونه اینو داشین یه دونه اونو داشین یه دونه کوبیده داشین یه دونه دوغ داشین داغونی بابا چیه باشه پر من به شما دست زور میدم همون جا که هستید بمونید تا من یه وای سیارا بفرستم سراغت ادمت خونن آقا جون چی میگی بای سرهنگ بله. من همین چند دقی پیش قرار گذاشتم تو تلگرام دارم میرم سر قدر یعنی چی؟ خدا حافظ سرهنگ خدا حافظ آقای از خاند... من به شما دست زور میدم همون جا که هستی وایسی دستاتم بذاری پشت سرت رو بدیم سرهنگ ببین تا حالا کسی بهت گفته بینیم ما نداری. بله آه. بند خدمتی شما میرتنم حالا میبینی آقا جون بشه به سرگوه از خرج سلام برسیم بگو گوجه اضافه یادش ننویزده مرحبت کم این خیلی خوب میدونه که مردم ازش بعدشون میاد. هر چقدر نزدیک انتخابات که میشه هر بار که میخواد صحبت کنه با لحن آمرانه به مردم میگه که تو انتخابات شرکت کنن. در از هدف ایشون اینه که مردم تو انتخابات شرکت نکنن. به خاطر اینکه هر بار که تو انتخابات شرکت کردن ایشون بازنده شده. بالغالممنه از تماستون البته امثال یه جوری رده صلاحیت کردن عمرو که آقا نیازی به این ترفند هم نداشته باشه دیگه. احتمالاً حال همینم آقا برای موکمکاری گفته و اگرانه امسال موسوی و کروبی هم آزاد بشن برای شرکت در نتخابات فراخان بدن در نتیجه نهایی خیلی چندان فرقی نمیکنه. کنن خیلی ممنون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 اگر فرض بگیریم که فردا فرض بر فرد میلیون ها نفر در اطراف و اکناف مملکت بیان در راهپیمایی 28 بهمن شرکت بکنند همچنان که در سالهای قبل ما شاهدش بودیم شما میخواهید بگید که این نشون دهنده درستی سیاست‌های مجریان که موضوعه مردو ببینید بیمت... آ زیبا کرد میسم خدمت بله ظاهرا اینجا توی گوشی به مجری گفتن جمعش کن دیگه داره خراب میشه ماجرا و اینا آقای مجری هم همجوری یه دفعه دیدیم پرید وسط اون با تات پته ادامه دادن که واقعیتی که در کشور ما کارهای بزرگ رو خود مردم انجام میدن یعنی شما ما اخیرا شاید دستاورت های بزرگی بودیم که توسط دانشمندان ما در زمین های مختلف اینها به وجود اومدن اکتشافات بزرگ در زمین پزشکی در زمین فنگی تخصصی اینها همه این ها همه این ها خدمت رو کنم که نتیجه حضور ببینید amigo دقیقاً همه ارزمند این هستش که همه ارز من این هستش برد. که کلا دی بوده که هر کی میپریده وسط زودتر میپریده وسط مثلا حرف وسط حرفومی یکی برنده بوده کوچکن ببینیم حالا همه ارزه آقای زیبا کلام چی بوده حضور طبیعه... نه ببینید طبیعی هستش که اینا توسط مردم انجام میشه اه. بالاخره از کور ماه که نمیان این کار رو انجام بدن اه. اه. خود مردم چیز میکنن منتهی ا بنده این هستش که این لزوما به معنای نیستش که حکومت و مجریان ما تمام سیاست هاشون درسته من همه حرفم این اوه هستش اوه اوه اوه, اوه آقا این چه حرفی آقا شما تو سیمای میلی میزنید بنده خدا مجید فقط کم بود بیاد دهن ایشونو دیگه بگیره جلوشو شاید هم حالا بیخود نیست که الان چند ساله دیگه ایشونو را نمیدن تو برنامه های تلویزیون خلاص اینجوریاست تو مملکت ما به هر حال متاع کفر و دین بی‌مشتری نیست حالا متاعش گاهی وقتا میتونه ساندیس باشه گاهی وقتا میتونه برگزاری کارناوال و زنبوش آوردن و شهر قم باشه. هایی میتونه اصلا به قیمت این باشی که خانمها کلن بیهجاب بیان تو خیابون بله مهم حفظ نظامه بقیه چیز مهم نیست که ماشین مشتی مندلی ارزون و اصلی ماشین مشتی دلی نه بغداره نه سندلی داشت فضولی نباشو مو از اوناش نستیم ولیتی الان بگوشم خور شما داشتی با این آجانس ما جانس هرفی زدی با چه ای داره درست ملتفت شدم دی بله بگم داشت زون نیست یه ما دیگه مونده بیشتر یعنی زونم دیرم هست البته ما خودمون در اصلاننده سرویس بین شهری هستیم ولی خوب چی همش پشت فرمون بودیم دیگه یعنی شرکت اومده چی رو سوار کرده خودشم پیاده کرده ما فقط پشت رول بودیم حالا باداش یه چیزی فضولی نباشه گفتم یعنی ما از اونا شیستیم ولی این قیمت نعمت ها چه زوریه نه بابا خیلی گروم خارج مارد چند دیاریم مثلا همی آنتالیا و آنتالیا با اینا ببینیم ای به طرفتی دست مادر وطسان رو بگیریم دوتایی بریم خارج زون چند نفری سه و یا خدا چه خبره خدا داشت چند رو یه هفته قضا و مزاد روشه دیگه آه یعنی خورد و خوراک و اینا همه با هم دیگه زونم مشروب زون من مشروب میدن ای وله خیلی هم مدلیست یعنی خب مثلا واسه یه آدم زحمت کشی مثل ما دادن هفت میلیون نقد واسه یه سفر دو نفره سخته دیگه نوکره چه کاری آدم میداره بیره همین شیراز میراز خودمون هر تر هم تموم میشه دیگه. نمیشه؟ عزیت نکن با شیراز دیگه مملکت خودمونه دیگه اونجا که اینجوری که گرون برون نیسته هاشه و بیخیال تور چند روزه شیراز ت... تن سه روز دو پونتن با با عزیتمون نكن نا دیگه یه هفته آنتالیا سه و ش... سه روز شیراز دو نیم یا <تصفيق> خدا باید هم بعد همون آنتالیا باید به همه میگی ای درفته بودیم خارج دیگه <تصفيق> والا چه هم حالا که دره را نشتیم آخی حال نشتی. راحته پولمول که کلن نداریم یه موکتو یا یه قابلمه آبگوش فرمه می‌داریم میبریم همین تیم همین زادزرود از همه زام بهتره دیگه <تصفيق> میخندی اید باست سفر می‌خندی؟ اوف چه بعضی را اندختن واسمونا ای بابا سمت میدم خش تستارم من من مسافرم اگر گنه کن اگر گنه کن اگر گنه من تو دارم این دم آخه گرینه کن اگر گنه کن اگر میبرم با خود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 غیر از بہرحال معدودی از نوابغ هنری بیشتر ادمها برای اینکه به سمت هنر برن نقشه میکشن، برنامه‌ریزی میکنن، آموزش میبینن، حسابیم خب هزینه میکنن. بہرحال هنرمند شدن یه جذابیتای داره که واقعا نمیشه نادیده گرفت. سطحی ترین جذابیت هنر همین شهرت و محبوبیاته که حتی توی محفل دوستانه و بین فک و فامیل رو رفقای خودتون باشه. مثلا عج میشینین بگن مثلا آره جعفر گیتار میزنه، و خاطر مثلا همین پای ثابت عمی میهمونی و دور همیا باشید. خیلی از هنرمندا هستن که چنین این ای از هنر براشون کافیه یعنی واقعا کافیه یه دسته دیگه هم هستن که از هنر شهرت و محبوبیت رو همراه با پول میخوان این آدی گیتار زدن و خوندن مثلا توی محافل دوستان و دور همی رازیشون نمیکنه مثلا اگه تو کار موسیقی باشن میرن دنبال خوانندگی حرفه‌ای و ضبط آلبوم و کنسرت و بر رسیدن به قله‌های موفقیت واقعا زحمت میکشن قله موفقیت برای اینا ماهی مثلا حداقل 40 50 میلیون پول آوردن و دیدن عکسشون رو بیلبوردهای شهر که البته خوب نوش جونشون زحمت کشیدن. یه د دیگه هم هستن اما میرن دنبال هنر برای اینکه تأثیری بذارن روی دیگران و در حقیقت از هنر به عنوان بلنگوی استفاده میکنن که عقاید دو افکار و یا صدای اعتراضشون رو به گوش همه برسونن. اینا معمولاً یا جوان مرگ میشن یا دق میکنن یا گوشگی رو افسرده میشن و کار دست خودشون میدن و معدودی از اونها ممکنه هرچی دارن تو این را بدن بره. و دم مال من هر چی که دارم مال تو ی باد خاک مال من هر چونی کارم مال تو اهل طاونیه ای تابیلیه مشرقی که این مسافر شیشه شهر خوست ما از جنس شبه کوست تو از مخمل سر رخت ما از تابلوتان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 گفتم چرا فقط هضمش برام سخته آخه تو راهنمای دبیرستان که با هم بودیم یه بار نتونستی نقاشی درست حسابی بکشی خطت هم که خوب نبود تجسم سه‌بعدی هم نمیفهمیدی چیه صدای خوبی هم نداری که فکر کنم میخوای آواز بخونی سازم نمیزنی از اکاسی و سینما هم که خیلی سر در نمی‌آری گفت چرا سینما زیاد میرم؟ گفتم باشه حالا یعنی میخوای وارد عرصه هنر سینما بشی گفت نه بابا یعنی فرقی نمیکنه کدوم راستش من که خسته شدم از کار کردن و ناشناخته موندن گفتم بله گفت همین دیگه تو هیچ کاری بنزه‌ی کارهای هنری آدم نمیتونه مشهور بشه برای همین من از فردا کارمو تو این حوزه شروع میکنم گفتم اون وقت کجا گفت تو فیسبوک گفتم بله همچین دوستای هنرمندی دارم من فریبرز غریب سلام چه خبرات تو این چند روز سلام مهمترین خبر فرشی جان استفای دیشب کارلوس کیروش بود که گفته از 11 اردیبهشت یعنی روز مجمع انتخاباتی فدراسیون و فوتبال دیگه نیستن چرا کیروش که تازه اومده بود ایران شروع کنه کارشو داستان از این قرار فرشی که آقای جیانی اینفانتینو رئیس یوفا که نامزد تیفام هست 24 ساعت مهمان فدراسیون بود تو تهران اما تو جلسه ایشون با مسئولان فوتبال همه بودند. تیرے خود فوتبالی‌ها به این حرفای ابشین پیروانی مدیر تیم ملی فوتبال گوش بدیم که در این مورد اینجوری گفت. بشنوید. از آقای کیروش که شناخته شده است، غیر از ایران و خود من هم که طالب عنوان مدیر تیم ملی دعوت نشدم، ولی خیلی بهتر بود از بزرگان فوتبالی مثل علی ادایی، کریم باقری، مهدوی کیا، آقای پروین، کسایی که میتوننن حرفی برای گفتن داشته باشن و در این فوتبال زحمت کشیدن و خاک خورده بودن. ولی یه سری دوستان پزشک و مهندس و بازاریاب دعوت شده بودن و اینجوری داره. بله خبت ما خواستن اقشار دیگه هم با نامزد ریاست فیفا آشنا بشن فوتبالی ها که میشناسن دیگه ایشونو حالا آخرش چی شد بله, بله. بله. امروز ارسی آقای کرفاشیان این دفعه نبا لبخند با قهدهه گفته امیدوارم که رئیس بعدی فدراسیون کمتر لخنده بعدم گفته اگر امکاناتی که کیروش میخواد نتونیم جور کنیم بهتره که بره ایشون و سر آخرم در پاسخ به اینکه چرا تاریخ استفای یازده 11 بهشته گفته چون 11 بهش روز کارگره چی بگم ولوا با این سبک که بگو بخندی که آقای کفاشیان تو مدیریت فدراسیون فوتبال رو انداخته بکنم مدیر بعدی بعد تو اولین سخنرانیش حتما یه سه چهار تا جوک بگه از بس که ما دیگه بد شدیم با آقای کفاشیان ممنونم ازت فریدرض غریب باد خداحافظی می‌کنیم تا فردا تا فردا خدا نگهدار پیش روزنامه اطلاعات به نقل از حسن روحانی در همایش 22 بهمن امروز تیتر زده بود که انقلاب اسلامی انقلاب اخلاق و مدنیت است کاش دوتا مثال هم آقای روحانی برای روشندتر شدن موضوع میزدن که چطور انقلاب اسلامی با خودش اخلاق و مدنیات رو برده اصلا یه مثال دوتا زیاده روزنامه کار و کارگر به نقل از رئیس فراکسیون کارگری مجلس امروز تیتر زده بود که انقلاب باید به سمت طبقه ضعیف و زحمتکش کارگران بچرخد عزیز من انقلاب اسلامی ها ناسلامتی چرخشش سمت قش زحمتگیش روحانیت انقلاب کمونیستی که نیست که شما چه طبقاتی داریو یه برگ دیگه از دفتر پسفردا ورق خورد سهراب رحیمی شاعری که متاسفانه هفته گذشته از بین ما رفت جایی گفته شهر من شهر بادهای طولانی بادهایی که میروبند برگها را و امیدها را شهر من شهر زمستانهای بیتا و تابستانهای بی هیاهو شهر من شهر جوانانی جویای مرگ و پیرانی جویای حیات شهر من شهر مدارهای باطل شهر پرسههای بغزاور در خیابانهای خلوت. شهر من خورشید خود را گم کردند به غروب ها می تو به کشتی ها نفس ها نگاه میکنم به مستی مردم بر ها شهر بوش گیر و تنها نگاه می کنم موچها پیش میآیم تا میدان آزادی و باز می گردم کاش مرغان مهرابا مرا بر بال خود می بردم ره ها می کردم در بندر تهران میان نفت کشها به روزهای بی تو چشم می بازم این روزها دل خوشم شاید آکارده آنها در این بندر دلگیر هنوز